اگه قادر هستید باورهای خودتون یا یک فرد دیگر رو تغییر بدید، یعنی شما بلدید خودتون یا دیگران رو هپناتیز کنید. اینو قبلا توی یکی از تاریف مرووط هپنوتیسب گفتیم در مورد صحبت کردیم وقتی که شما میتونید باور و برای خودتون یا دیگران شکت بدید یعنی شما میتونید خودتون رو هپنوتیز کنید و در واقع ابزار های خیلی مختلفی میتونه برای این تغییر باور به کار گرفته بشه از جمله، ادبیات هیبنوتیزمی تکنیک های هیبنوتیز و یکی از چیزهایی که خیلی مهمه و الان میخوام بهش اشاره کنم تصویرسازی ذهنیه اگه شما بتونید تصفیرسازی ذهنی کنید جوری که خلاف باورهای فعلیتونه مثلا ممکنه شما باور داشته باشید که چون نمیتونید مثلا کم میلیار تومن پول داشته باشید و باورتون این باشه که مثلا حدد اکثر پولی که میتونید داشته باشید توی حسابتون به فرض اصلا میلیون تومنه خب اگه شما بتونید با تصویرسازی سازی ذهنی خیلی عمیق و متمرکز کاملا حس کنید که همین الان مبلغ بسیار بیشتری نسبت به اون مبلغی که قبلا بیجرای حدد اکثر ذهنی تو موده دارید اگه بتونید این کار کنید یعنی شما موفق به هیپنوتیزم کردن خودتون شدید و در واقع توی این فایل صوتی من در اصل میخوام به این اشاره کنم که زمانی که شما بتونید تصویرهای ذهنی رو در خودتون یا دیگران فعال کنید، تصاویر ذهنی که بسیار واضح و قوی هستند و احساسات رو برانگیخته میکنند و انرژی رو در وجود شما به جریان میندازن یعنی شما موفق به هیپنوتیزم کردن خودتون یا دیگران شدید چون ببارتی هیبنوتیزم چیزی نیست جز این که شما بتونید جهش کنید و بشکنید اون موانع و محدودیت های فعلی که در ذهنتون هست در ذهن منطقیتون هست و در واقع بتونید چیزی رو تصور کنید چیزی رو حس کنید که فراتر از چاشوب محدودیت های ذهنی فعلی خودتونه بنابراین از همین الان شروع به تمرین کنید و ببینید که چگونه میتونید چیزهایی رو حس کنید که فرای محدودیت های ذهنی فعلی تونه. چطور میتونید در دیگران آرمان ها و آرزوهای رو زنده کنید که فراتر از محدودیت های ذهنی فعلی شونه و این کار چیزیه که توسط هیپنوتیزم در واقع انجام میشه و اصلا بهش میگیم اگه در حال حاضر نمیتونید مثلا تصور کنید که توی حساب بانکیتون از یه مقداری بیشتر پول هست یعنی یه عدد خاصی براتون مقامت ذهنی ایجاد کرده در واقع شما هیپنوتیز شدید شما همین الان توی یک تونل واقعیت هستید که توی این تونل واقعیت در واقع فقط اون مقدار مبلغ مجازه و در هیچ هرگز هم توی زندگیتون رویدادی رخ نخواهد داد که مبلغی بیش از اون مبلغ وارد زندگیتون بشه در این میان استفاده از ابزارهای خیلی سادهی مثل تصویر سازی ذهنی مثل تصور کردن و حس کردن اون چیزی که میخواید در وضعیت آرام ذهنی در وضعیت مدیتیشن میتونه دقیقا شما رو کم کم وارد تونال واقعیتی کنه که باورهاتون عوض بشه با آرهای کنندتون کنار بره و کاملا حس کنید که اون مقدار رویاییتون که فراتر از تصورات فعلیتونه رخ داده و نهایتا براتون واقعا رخ بده و این کاملا ممکنه به شرطی که با تصویرسازی ذهنی بتونید اون ماکسیموم مقدار ذهنی که بر خودتون در حال حاضر مجاز میدونید رو جابجا جا کنید